ما اومد فرمه آجام درموش دارید برحمده به اجموع بود تا تا اینجا متحدث شدیم که وضع اجماع در بین شیبه به چه محری بوده از اقتداد کار از این دو محلیت اجموع در شیعه باید به ما بررسی بشه یکی بحث کبروی. که در اصول بررسی میشه و از صحبتهایی در اینجا هست شد به بخص درون صحبتهایی که طبیعتن اینجا داشتی نیست اما به طور کلی به اصطلاح این صحبتهایی بشه به نظری به اجماع ادعای در میان تاریخه در طول تاریخ اصلا که اصطلاحی که ما شواهده ما نشون میده در مکتب دوم برداد ترخیه که ما میشه اصطلاح مکتب دوم بغداد از اینجاست که من که داران کردم بعد از مرحله اول که تولید علم مراد ما احادیس در مجالات مختلف و معارف مختلف از سال حدود هش و سال سال پنجا تدوین اصلی شد بود تدوین بعدی هم بود اما اصلش اینها بود و در کوفه هم بود در وین کوفه ضعیف بود. بود. بود بعد از راه افتادان بغداد در سال 145 زمان خود سالم بود یواشواش ادهی از بزرگان شیعه هم به طرف بغداد رفتن و حسابا این مرحله بغداد رو باید یکی از مرافل بسیار خوبه تفکرات ما و میراسای علمی ما بدونیم در این حالی که عقل گراه هستن مثل یونس و ابن عبی و این در این حال با توسل به روایات و تمسخ به روایات و تنقیه روایات و تصویل و پالایش شعر روایات بزرگی بر، و مساحت بزرگی بر از حدود سالهای صدا تا حدود سالهای سی سر, سی سر این بود اصطلاحا از وقتش در همون سال های دیست ما مکتب اول بغداد نیم بعد از آمدن کلینی به بغداد که احتمالا حضورت سال هایی سی سن به بعد باشه چون در ایدن روشن نیست برای ما توی مسادر نوشداری ما ذکر نشده دقیقا چه سالی من دیدن ایشان در چه سالی به بغداد آمدن؟ و با انتشار کتاب کافی البته کتاب کافی بر حساب ظاهر کتاب است لیکن خوب اختیار فقریست یعنی کتاب گذینشیست کتاب کافی و با کتاب کافی با اینکه که کافی رو در قوم حالا چون توش مشهر ری هم هست در ری یا قوم در باشه اما بدون شکنش و اساسی کتاب در بغداده در قم، چیلی از بزرگان نداریم که را کتاب کافی باشن این که سه چهار نفر هستن که صد و هم نمی که اون در اون درجات و بالا اما نصف معروف کتاب کافی که مخصوصا مرمون شقه توسی در اول مشیخه اول کتاب که شروع میکنه کتاب کافی در مشیخه تحبیر استرسا طرق بسیار خوبی و ادهی از بزرگان هستن این کتاب رو همه هم بردادی هستن یعنی انتشار کتاب در با آمدن مرحوم کلینی انصافا زمینه خوبی برای توجه میراث علمی در بغداد میشه که مخصوصا بعد از وفات مرحوم کلینی برابر معروف که 329 باشه پنج سال فاصله زمانی زیادی نیست 5 سال بعد از وفات مرحوم کلینی آل بوبور بغداد میشن سی و, سی و چهار. یعنی هزار و بعد که چنده با سلطه آل که قطعاً طرف دارشی ایدان روز نشتن بعض زیدی بودن اون بسمتش باید نیست اما بعدها یک نشاطی به مکتب وقتداد داده میشه و انصافاً این مرتب دوم وقتداد که از همین زمان تقریباً با حساب شد رشد چشمگیری پیدا میکنه با شخصیت یا کری فرصی همطاله که اینا بوده بگه اتضاع هم اینا هم قومی بوده و آمدن بخدا هستن از اوزوروان قوم که اون هم آمدن بخدا ها جنوی بخدای هست و علمایی که در خود بخدای بوزن مثل مرموی سهد مرتضا و شهر جمسی و مثل خود نجاشی، نجاشی متولد بخدایده و بچه بخدایده و زیادی این مکتب دوم بقدار خیلی تأثیر گذاره فوق الاده ارز کردم چرا شاید به گفت ردود نوت درصد مجموعه معارفی که ما الان داریم در این لحظی قدومه شما هستم برگ گرده به مکتب دوم بقدار ما در فهارس اونده فهارس ما فهرس نجیفی و شیط سوسی فهرس مال ابو خالد زرادی اونم بقدار دوره اون میشه که ما از فهارس مهم داریم فهارس بخداریم فهارس قوم الان به ما نرسیده مثلا فهارس ابن بوته اینجور در قم تبدیل شده اما بخداری ها از او استفاده کردن مخصوصا نجاشی تصفیل کرده تمام فهارس ابن رو نقد نکرده فهارس مرموم ابن اللهی فهارس مرموم صدقی این همه قومی هستن تمامی فهارس قومی هست با تصویم و تنبیم توسط نجاشی و شرف توصی به ما رسیده بخش که خب حدیث و خب قوم ما مثل مردم و صدر و دیگران با که خب الان معظم کتابی که ما در حدیث یعنی کافی و تندیب و استفسار کتاب های از این را گیفت کتاب های مثلا در زیارت کامل زیاره این خب قومی بوده و بعد کتاب در برد دار کتاب و نشر کتاب دارم. و هر حال با رشدی که شیعه به لحاظ سیاسی و فضای باز سیاسی در بغداد پیدا رو کنه خیلی این مختب دومون در و چون بغداد هم شهر بزرگی بود, کش... بود که دنیای اسلام در اون جامعه بود خب افکار شیعه هم مفرح می شود شیعه هم آزازی فیداد در رو ها هم اشکالات می ایرادات میکردن. فکر خیلی صاف و پاکیزه و منده منتقد و انتقاد شده و خیلی فکر مرتب و جمع رو در این مکتب ما میبینیم از کلم انصافا اون چی که ما داریم برمیگرده به همین مکتب بردار نوست از سادش مکتب بردار البته خیلی هاش به خون برمیگرده لیکن بعدها این تنبیه و تصحیل و پالایش مثل همین که اسم بوده فیرز مثلا شاید شیخ تروسی بوده 100 کارم انجام مورد نیزا نه بود اما نجاشی پالای شیخ مورد مثلا نه هم. بود و با نجاشی یک دیگه از ماهاز با دقتهایی که ما انجام دادیم به نظر قلط های باشه خود نجاشی هم بگیر فی فیضه است معاربا قلط کسی این اونها بگیرد که حتی تو مجال فیرم تو مجال رجام، تو مجال حدیث، تو مجال فیرم در مجال فقه تفریعی چون خب بغداد محسرشان در فقه تفریعی در خب نبود اصلا خبیش ها دنبال فقه تفریعی نبودن فقه تفریعی یعنی خارج از مطم روایت فتبا دادن اگر اینطور باشه روش در قوم نبود اصلا کلن تو خب نبود شاید دخوست این فقه تفریعی هم در برداد فراسل نجونهی بود که بعدها مترم به خواست شد اما بدون شک فقه تخریه مهم میشیه محسوس شیخ تلسیسی این فقط بغداده تو خود بغدادم خیلی متعارف نبود خود شیخ تلسی در ازول فقه محسوس که فقای ما از متون یا روایات خارجی میشونه هستا تغییر لحظم نمیدونه مثلا در روایات مثلا یسته هر یا ممکنه مورد واجب باشه درد از موارد در همین کتاب کافی است با کراری هست کنانبایی کنه یعنی سعی می کردن فتاقاشون دقیقا این نصوص باشه و یعنی تغییر لحظ هم نمی در به ازداشت رو می کنم اول محصول خب این فرحه تفریری مثلا در قوم کلن نبود فرحه خلاف در قوم کلن نبود و در منابع ها مثلا معنوم صدق چند جایی در فقیه مورد دو مورد آرا آر اهل سنتی بیماناسیتی بوده هم کن مشابهه چیلو بودم و همه متنبه بدارن که مورد صدق چیه یعنی عبارت که روشنده بوده بردید علا آیا حاله حالا جایی اینگریز خیلی خلاف در قوم نبود اما چون در برد چون قوم تقریبا همشیه بودن بعد از آن رو در هنشائره تحسیس شهر قوم که حدود زمان امام صادقیانه اجداد جهان موساده دانوں یا آشنا دانوں باورو اتاق دان امام صادق ادیال اشعار میان قوم از موساده سوالات میکر روایت این اوايل امر اشعار قوم. تا دیگر دیگه دیگر آشنا جنبی شیعی میکنه. اون شعر که از اتفاقات ناف میگه. اسرام به نظر در تاریخ قوم اگر حالا مالهاو حافظم افتادشیش یه سالی همشین سالی نوشته که منبر مقصد جمعه رو از برداد برای قرار بودن در مطمئن اصطلاح بود اگه شهری بزرگ بود به اصطلاح بود شهرستان به اصطلاح بود یا مرکز اصطلاح علامت شهرستان بود این کسی روی که مازجمعه احبار میشون چون مازجمعه در گوسته ها احبار نمیشون که جبهه مهوریت و شهری جامعه هم ه من تو دانم که چطوری داره اول اینکه تو کامپیوتر نگاه کن. نوشته مسجد جامعه و درصد 30 درصد یه چیزی اینجوریه. از بغداد اومدن به قم. که از مرکز خلافت برای تشکیل وقتی مسئله که در مشعل در مسجد گوهرشاد یه منبره بین ممبر ممبر ممبر ممبر. این همون منبر نماز جمعه است این رو با تشریفاتی برای مثلا منطقهی که تبدیل به شهر و شهرستانی اصدار میشد علامتش این بود که مسجد جامعی تشکیل میدارم و در اون مسجد از مرکز شلافه منبری رو به عنوان منبر نماز جامعه میگوزه به نظر هم دیم تا هشت ساله در از سالهای شهر خون خودش که تازه هم همه همه شیعه میشه از قیل از با اون بزرگی و با اون ح خیلی نه با قابل قیادت پر از این خوب دقت بفرمایید یه مقداری از این معارف دینی ما مثلا پس تفسیر درست قمیان دارن اما خیلی کمی نستاز تفسیر که در بغداد هست مثلا همین کتاب تبیان مظموم شیخ توسی طبعا به طور کلی خود شیخ توسی دارد تا در مجموعه معارف دینی ما یکون تحریف دارد خیلی عجیبه در تفسیر دارن، کلام دارن، فقه دارن، فقه چا دارن، فقه محسوس دارن، فقه تحریری دارن، فقه فق خلاف دارن، اصول دارن، رجال دارن، حدیث دارن، فقه دارن. خود شیخو طوسی دو تنهای یک مدرسه در طوس، یک دانشگاستن کاری. تقریباً عمرش در مدت 41 سال یا دو سال ایشون در بغداد بود، ایشون ظاهراً از طوس به بغداد ما با تعمل زیاد دو تا استاذ تو ایران پیدا کردید تو را از اینکه حضور نگه قب دیگه ظاهر هیچ آثاری از علمیت ایشان در ایران نیست هرچی کلاله ایشون مجیون بخضا در مکتب دردار و هر حال این مکتب بدون شد تأثیر گذار بوده و با بررسی کتاب خلاف بشه. کلمات کلمات سید سید این احساس به انسان در شده اجمالاً مجموعی از فتاوای فکری در بردار تلقی به قبول شده که اسم شما اون سه موضه اجماع داشته یا شیخ خصوصی اجماع مستلح نیست تلقی و قبول بعدم این مطلبی رو دقیقه ما وقتی یه توجیه میکنیم مثلا میدیم اجماع این و به قبول این معناش این نیست که این سر در درصد در موارد دعای اجماع سرد بکنیم ما در موارد میدیم سرد و موارد دعای اجماع میکنیم خودش به تنهایی قائله این یا اگر تلقیه ها موضوع به ما خبر نرسیده فعلا توی احوال که نگاه میکنیم خود سرد و به تنهایی نفر دیگه میمیم کسیم تلقیه به قبول علایه حاله اینه که مرمومه آی توستری هم در کتاب کشفه نام مثلا گفته که این مورد اجماع اینجوری بوده که قاعده ایچیده اختیار میکرده بود اونو قاعده عدید داشتن ادای اجماع میکنه راسته این هست اما این در عمیل موارد نیست این شاید در سه درصد از موارد ادای اجماع سرون بود خیلی کمه سه درصد دو درصد از موارد. مثلا مرمومه ش امنووییس این که اساس رو برای ارتضار میکن که این واجب نباشه لظاب ما که اساس و برای وارد پس اجاع که واجب نره راست این هست یعنی آمده یک خیری یک وارد رو ادعای اجماع کرده طب اون قعدده ای گفت می است اون ش بر اونحق داری اجاع کرده. این ما داریم تو ف ما هست. اما مثلا مینی که مجموع تو سری بود اینشااد کللا اگه ما بگردیم تمامفل رو مثلا تا درصد دو درصد این خیلی, خیلی زیاد نیست با نسبت بالایی نداره. این هم که ما عرض می‌کنیم تلقی ان شاء الله حدود نسبت 80 درصد 5 درصد 40 ما بعضی موارد داریم که تلقی هم برای سید نمی‌کنه. یعنی ما خبر نداریم. چون ما وقتی به احوال نگاه می‌کنیم مثلا سید مرتضی قالی کسی قائل نداری. وقتی نگاه می‌کنیم به احوال فقط سید مرتضی می بینیم احتمال داره در بغضات ترفی بوده به ما نرشیده. به هر حال این هست این اجمالا در فقه شیعه پیدا شد به این تلقی رو باید بغداد دنبالش میگن به هر حال انصافش ما در فقه شیعه دربار این چیز در قوم هم نشد قوم خیلی صافتر بود قوم کتب و به اصطلاح مسادر اصحاب بود البته این کتب و مسادر نسخ متعدد داشتن تقریباً میتونیم خیلی از نوست هم بتهمیم تقریباً نه تقریباً و تلقی مشایخ هم بود نسبتاً آسانتر بود تو قب مقصد مرحوم و صدوق تصدیح میکنه من هر چیزی رو که استادم ابروالی تصدیح بکنم من تصدیح میکنم حتی اصلش هم بگه میگه. میگه اگر گفت سریعه اگر گفت سریعی نیست برای میگه سریعی نیست برای قدیم کنم شو میگه مرحوم و در کتاب فقیه در سلات لیلت قدیر تصریح میکنه اگر استاد تصریح تصریح کرد من هم تصریح میکنم. اگر تصریح نکرد من تصریح میکنم ها البته این ابن شخصیت بزرگی خود هر حال هر انسانی اشتباه داره اینجور نیستی خود ابن الالی بوده هر کسی که نفی صحب از فیغمبر بزنه اول درجه قلوم به هزو قلات حرف بی اساسی ساتن با خود ما قطعا نفیه سر من رسول الله میکنیم و قطعا نمازم این هم تو همه بقای ما همه نفیه سر می کنم بگید و همه حرف سنگی میه قابل اعتماد نیستی میشه ولی برای باید هم در سوش دو لفت هره دوستان در شخه مطلب بین اهل سنت مشهور بوده شخه تقییه خیلی واضحه یعنی به هر حال این که بر فرزم این باشه با اینکه اکثریت قطعا علمای شیعه قائل به نفی سر هستند من ازاله کسی بگه هر کی گفت این قاریه این اول در فرقی قلوب حرف متینی نیست با احترام که با برای ابن ولی رحمه الله قائل هست برمیش که یک رساله خواهم نوشت نمیده برمیش علازم تونسو میدون خداینا اولش گیر کرده 20 سال میبینی تونسیا خوب نیست انسان‌ها نه این ولیش خوبه نه اون ولیش خوبه به هر حالش گفته که من در و در خود که صلوات و رساله مفرده که اگر نوشته به ما نرسیده فعلا الحمدلله رساله مفردی در صحو نوی نده بله یه رساله مفرده به شیخ مفید هست در نحوی رد ایشان در نوی در به من وصالو چه تونرته مفيد شي از رو به به هر حال نه اون طرفش خورده بحث الیگیسم خاطر واسه روادت سیام داری خود ما که سحور نه شما سیاسنده من نمیدونم لکه خب ازها میگن موافقه با سنیات طرح و تقیع واژه کلیشه ایه سالها چه این تکرار نداره این <سؤال> نه در موضوعات فاضل هست نماز دیگه. یه چیزی عجیبی که پیغمبر سر درکت نماز رو بعد بلند بشه راه داره بعد پشت اون درختی که بوده تکه چوبی که بوده رو جمعیت میز و بعد یک بلند بهش یا رسول الله فراموش کردی یا نماز شده پیغمبر نه هیچ گفت نه چون دار رفتو پیغمبر تعجب کرد. از اون پرس گفتم بعدش laik هم برگشت و همونی اون درکد دیگه تمام کرد. خیلی بیه حدیث صحب نبی همینه تمام حصه صحب نبی همینه آدم بیاده این راه برو و حرف بذار تماماً استدبار از قبله پیگام بکنه خوش قبله بیست و مردم صحبت بکنه بعد برگرده اون درسته تمام بکنه این فتوان ما های بله همون تشمیش میشه. بله هم خیلی میگه حالا کسی گفت که چه ضرورئی نبی درسته اینجوریه قلاصه خیلی عزب سنگینیه دیگه انصافا یه کسی میگه هرکسی رو قبول نگه خیلی انصافا با احترامی که ما برای ابن ولید اینجور مسائل که من شیخ مفید به صدور میشه حتی نسبت میگه عالم این مسائل خوبه شیخ صدوق و اهالی طایفه اینجوریه شاید مثال من مفید نباشه حال چاپ شده سوال من به لایزه هم از تقریبا رساله اولین این بار در دورل منصور نوی شهری ثانی آماده کتاب دورل منصور کشخور ماننده حدود چه سال قبل 30 سال من مهم مرشی نسخه داشتم چاپ از این کتاب چاپ نشد دورل منصور ما نوی ای میگه ایشون دیگه دو تا رساله پیش من هست ظاهرش مال مفیده چون داره منقرض میشه و اوراقش تخریب رو داره خراب میشه من نگم میکنم تا از نره این مستر ما اینه حالا ایشون اشتباه احتمالاً کرده حتی ایشون میگه احتمالاً مال سید مرتضی باشه لكن نیدسه مرتضی موقع اینطوری واسه دو به همین شکلی مفتی بیشتر میخواد به هر حال این قرار ممکنه چون یک این رساله این تاریخش اینه تاریخ اون رساله و رساله که آهای خوبی زیاد در معجم اسم و این دو چهار تا دیگه با اولیشون که روی این دو تا رساله رو به شیخ مفید نسبت داده شده تاریخش مال قرن 12مه اصلا قدیمی نیست به نقل از جاده دو سال پیش منه من در درش طرف طرفدار خطاش کاغذ از طرف میشه من اینجا میام که این از طرف حصر بشه روشن شه این که ایمونگیر رساله شیخ مفید یکی دیگه چیه مستدر مسلما خیلی, خیلی, خیلی ابهام تاریخی داره خود ایشون اعتماد مال کلی موجودا باشه، ما مال شیخ مفید نباشه. به هر حال از دست این تلقی رو مثلا نسبت بدیم به کلینی. بگیم مردم کلینی یه دید در روایات رو قبول کرده. همین روایات خام در در بغداد اینا و قبول شد نیست. اینو نمیتونه قبول رو. کتاب کلینی بلا اشکال در بغداد تلقی و قبول شده، جای بحث نیست. اما اده ای از فتابا مشهور شده ادعای اجمال شده که در کتاب هم نیست روایاتش نیست لذای ای کلی هست که آیا از اوائل محدود در چطور اده ای از فتابا بین علمای شیعه در محدود تلقیه به قبول شده این بحثات رو اوچند بشه انصابت افهام دارم در مطابقتی که کردی خوب دفعه در تطریقه که کردی کتابیس دو نام فقه خیلی اون فتاربایی که سید یا شیخ ادای اجماع کردن و حتی در نصوص ما موجود نیست تو فقه هر رضا موجوده این هست این رو ما عملا میبینیم کسی به ما نگفته عملا این رو میبینیم و عده هم در فتاربای قومی ها شده این هست حالا آیا واقعا این فقور رضا همون کتاب تکلیف شیخ توسی در کتاب قیبت اسمش گوشه تعدیف مشهور تکلیفه در خود کتاب فهرست شیخ توسی تکلیف آمده اما در قیبتش اسم این کتاب تعدیف آمده آیا واقعا همین کتاب خود این کتاب احتمال داره اصلش کتاب دیگر بوده چون احتمالا این نحوه نگارش خود دقت بکنیم این نحوه نگارش اون نحوه نگارشش اینه روایات رو بگیره اولا جاهایی که متعارضه یک تا رو قبول بکنه بعد که قبول کرد سندها ها رو حذف بکنه بعد از اون مکررات رو حذف بکنه اینا این رو به هم بشستونیم بشه فرق این اصطلاح هم ما اسمیشون فقه منسوس که از کریمهای بروجهی بی اسمی نگوشن اصول متلقات مرادشون از اصول کتاب های اصلی و درشگاه های اصلی که مطور اونها متلقات از رحیه متلقات از روایات توش اشتهاد و استنباط نه و تعبیر و اصول متلقات اینه اصطلاح هم ما فقه معصور با میم و حمزه و سایست نقطه و وا و را محصول اصلا معنی حدیث گاهی معنی فقه منسوز اصول متلقا احتمالا بعضی از کتابهایی که نسبت داده شدید از آن از آن از آن بعد از سالهایی دیویز بعضی از کتابها احتمالا به این شکل بوده به ما نرسیده احتمال همشه احتمال یعنی ما قدیم تر از این دیگه فکر نبکنم خیلی قدیم برید اما احتمال هایی سال های دو فتح محصور یا منسوس یا اصطلاحی که باز من درشی برای دادم دوره انتقال از نصوص به فتح ما دوره انتقال از نصوص به فتح آقا تو این دوره انتقال از نصوص به فتح این کتاب فخر رضا از همه قدینتر به نظر بیرسه مرموم های آسر حسن سر دایی کرده که این کتاب تکلیف شرمغال نیست و چند مورد از تکلیف مطالبی نرسده ایشون هم آورده که در این کتاب موجوده خب یک کتاب رو با سه مورد و چار مورد و پنج مورد نقل نمیشه اثبات کرد اثباتش خیلی مشکل اما منهج کتاب روش کتاب قطعا قدیمیه و چند بار عرض کردم از اجایی به کار اینه که با اینکه این ابن عبی ابن عبی از آغرم بشین یا بعدها منحرف شد و ادعای و حلول و علوییت و رفت و سماوات و عرضین و از این حرفا گفت خیلی عزیبت هم خلیفه اون رو و به همین اتهام پیش خلیفه میبرند و دو تا باش بودند یکی بشون یه طب کن تو صورتش میکنه یکی دیگه اشت هم بگن طرف و سماوات و عرضین لاغی را بعد هر دو در سوزی بکشن هم شاگر هم استاد و خودش هم آدید برای با این که این اعلان در بدود ساله های 322-23 اتفاق میفته از اجاییه به کار اینه که مرگوم صدوق پدر چون صدوق پدر و صدوق پسر غیر از جنبه های علمی شد خیلی مردانه اهل خود صور بره و تقویه و خیلی فعال ها در صدوق چون زوان فعال های ماست کتاب شد مقانی رو ایشون نقل کرده خیلی عجیب. این چون در زمان حیات خود صدوق پدر چون ایشون منظ صدوق پدر در زمان خود صدوق پدر 5 سال قبل از رفاتش 6 سال ایشون رو اعدام میکن با عنوان کف و زنگه و حلول و اتحاد فقطتون که هم قیل عجیبه بعد ایشون به پسرش نهر کرده پسرش در از در کتاب فهرست نجاشی مطلب نعمده این مطلب فقط در فهرست شیخ تونسی آمده وقتی کتاب تکلیف رویشون نسبت میده طریقش این ها به مرمون صدو از پدرش از شرمغالی خیلی عجیبه این خیلی این ما خیلی عجیبه به هر حال این رو ما احساس میکنیم حالا آیا این چی مقدار دقیقه نمیتونیم خیلی دقت. ما این رو میدونیم که است اصفر حتی فتاوای قومی ها اما فتاهای قومی ها نزیاد روایات یعنی اعتماد کتاب رو روایات مثل ها بیشتره اما در این حال فرصه مثلا مطابقتش با کتاب خرید اونقدر دیادی مطابقتش با کتاب میگن شرایع علیه که در صدوق بیشتره خیلی میگن تطور باقید و در بغداد هم هست در شرح حال شب نمیشتره که مرموم حسین نو نوبختی که به اصطلاح امروز ما جزبه هم نائب امام و هم دوز روشنطک هایی نینی حساب میشه به اصطوره اون روی. ایشون برای این که شیعه در دوران قیبت و حیرت به حساب از جرب دوران در در حیرت در فشار اگمی و معنوی واقع نشن دستود دارد به شرمقانی که کتابی دونستی که جامع باشه بین مکتب قوم و برداد هم آراء قومی های در نظر دیگر هم بردادی ها و بعد از نوشتن هم کتابیشون به قوم فرستاد غلم های هم گفتن بله این روایت همه روایت, روایت الا دو سه مورد که قبول نکردم. به استثنانی دو سه مورد قبول کردن و این کتاب در برداد جا افتاد حتی داره که خادم حسین روح گفت که سوئله شیخ انکتب شلمقانی قال و کیفه نست آباها بیوتونا ها ملا خانه ما پر از کتاب های این آیا واقعا احتمال قوی داره که همین کاری که حسین روه نو بختی کرد که منشأ تلقیه به قبول چون نایب ثبوت هم بود و چون حسین روه نو بختی سال 304 به اسطلاح متصدی این مقام بود تا 323 مثلا شاید کتاب شون 323 که این یابو کشته 22-23 که این شخص ادام کردن این باید چیزی ما بین این سنواد مثلا سیس از ده این کتاب الان هم نمیدونیم صدوق پدر کی به بغداد آمده چون قطعا نیشون باید به بغداد آمده شد که این کتاب رو نرم کرده اینو هم الان دقیقا نمیدونیم آیا وقتی چون در اون دوران حیرت نوشته شد و به عنوان یک جامع بین فتابای علمای مختلف شیعه که یک نوع وحدت در جامعه شیعه درست بکنه د؟ یعنی شیعه اضافه بر قیبت ایمان صلوات الله علیه دیگه مبتلای به تو فکری و فقهی نشه این فکر رو چون خود باسه نوع رو جزوی روشن دینی حساب میشه یک نوع روشن فکری است که یک ای برای شیعه درست بکنه و کار خوبی هم است انصافاً خیلی کار ذریع و ذریعی است و این نشون میده که شرمقانه چه فقیه متبهری بوده هم کتاب الان همینطوره. حالا ماد شنبقانی با جمالکستیت من نمیدونم کتاب فخور رزا که الامنام فخور رزا معروفی که قطعا ماد نیست این کتاب انصافن حاکی از این است که مؤلفش خیلی خوغلاله است خیلی فوق است انصافن به نظر من بر صد و پدر صدوق هم میچرده خیلی خوغلاله است فخر کاملا مسلط و مشرف به از اصحاب روایات اصحاب تا آرز روایات و اختیار حدیث مناسب به استثناء ادهی از موارد که قبولش نداری انصافا من حیث المجموع حاکی از یک به اصطلاح مرد مطلع و آدام و این یک یکی میشه قبول میشه در بردام ممکنه این زمینه یه های و است که شیخ توسی و شیخ سید رو خبر میدهند در قرآنی ارز کردی ما یقین داریم در برداد مطلبی اتفاق افتاد که زمینه ای برای ترقید که کرد اگر بخوایم از ارز اینا مثلا در کتاب شهر صدو یا در کتاب سلیمونتزه هیچ اسمی از شرمقانی و آثار شرمقانی نمیده این رو ما با تتابق دیدیم خودمون تطبیق دادیم این مطلب خیال نفرمایید مسئله که من فهمیدم الان خیال کن. مثلا وقتی کتاب کتاب که رو چند دفعه ارسل در قرن 11 به دنیای ما رسید اصلا این کتاب کلا وجود نداشت شخصی به نام قاضی حسین میووسی قاضی حسین عاملی کجایی ایشون میره مکه از اصفهان اونجا ایده از خجاج قمر رو میبینه این کتاب رو پیش اونامونه استنصاف میکنه میاره اصفهان به مجلس اول میگه چون اول شده یقول عبدالله علی ابن موسا آمین علی ابن موسا علیه بعد اضافه کارش علیه ابن موسا بعد اضافه کارش این کتاب رو من دیدم و استنصاف کردم من مثل من توضیح دادم ابحام زیادی در اینجا جام موجوده که ما واقعا هم سردر نمیاریم واقعا سردر نمیاریم مثلا کتاب رو استنساخ کرده و بوذه میگه امضاءهای علما و توقیعات و علما و تالییات و علما در در آرشیو کتاب بود خب چه اونها رو استنساخ ما کرده اونم شاید کسی اتفاق استنساخ بگه دو سانت ما حاشیه اول و صفحه میه مثلا صورت خط العلاسب خط اولا صورت خط وقت جیمیت میگه فتوکپی بوده خیلی نبود مثلا صورت خط المصله این صورت یعنی این فتوکپیه ما خب میچسط این کارا رو بکنه چرا نکرده گفته ایشون حجاج قوم بودن مجلسی بفرست قوم سوال بکنیم حجاج که فاصله قوم هست خان که اول دو همون صدر شد کلومتر و از بفرستن قوم سوال بکنیم این حجاج کیه؟ این کتاب کیو رفته؟ از کی بوده؟ اون حاجی سالم برگشتن سالم برگشتن یه کتاب که خیلی مسافت دوری باشه چرا مجلسیه این که اولی ناشر کتابه؟ این کار رو نکرد ابحام های عملی داره که ما نمیدونیم نه که خدایی نکرده حمله بر قصور یا تخصیلی ما دقیقا از این قضایی ها سر در نمید حال این کتاب یواشواش مشهور میشه من چند دفعه از سرم. این کتاب اینقدر مشکول میشه در, اصول. در قوانی در جلده دوی قانون رو در کتاب خورزه هستم حسول مرمون صاحب در ده ها کتاب و اصولی ما و غیر و اصولی ما متعرض این کتاب میشن و اگر آقای این حال نداشت این کتاب رو بینن حاجی نوری, نوری در مستزر در جلد خاتمه مستزر راجب کتاب از تحرمان فخورزدار تقریبا می از همه کتاب مفصل کردنش خیلی مفصل نمشه صاف بدم عرف عب نفسه شریفه در این مطلع خیلی طولانی و خیلی اقوال رو آورده و خیلی کلمات رو آورده راجب فخورزدار حاجی نوری قدس الله نمی سریش هم قبول نکن انصافا اگر آنو خواستم یعنی یک چیزی نبوده که در این چار سال اخیر روش کتالی شده باشه خیلی بحث کردن علمان ما انصافا خیلی بحث کردن مثلا همین نقطهی که من الان به شما گفتم این رو به یک شکل دیگری مرحوم صاحب حدایخ داره صاحب حدایخ میگه بگذارن ما داره رزد به خاطر اینکه که ادهی از فتاقا قیل اصحاب ما وجود داشت ادعای اجماع هم برش شده بود. سنوات شیشتن حقا ادعای اشتباه رو روایت هم توش نعم حالا فقط چه حساب پیداییو او که ها یعنی او فقط تا بیگی این همونی سی بند داره دیگه من از یک زاویه دیگه بررسی کردم اشون یه از این زاویه نتیجه می مولا درازات زاویه ما مریض ترش ما وقتی گفتیم که این کتاب احتمالاً مبدع تلقی‌هایی است که سیل مصباح چه درست فرنده پس خیال نمه همون یک مثالی که من جدیدن دارم اون رو قبل از با پس محروس آقاده هم گفتن <تصح> از فرق ما اینه اونا استظهار کردن که ایمان هزر قضا هست چرا؟ چون ما فتاب زیاد داشتیم. در هیچ کتابی هم نبود فوق ها هم فتباز هست گفت ادعای اجماع هم, هم کرده راست هم میگه ادعای اجماع هم ترده هیچ کتاب یه دویش این کتاب که قضا پیدا کردیم من اعتقادم اینه که این کاشف از یک تلقیف نه این که ملحب داره داره کتاب که واضح ملحب داره, داره. این که خب خیلی عرض بی که انسان رو ملحب داره, داره ما به ذهن این تنبایی که علماء ما پیدا کردن یعنی منشه احتمام از زمان سطحیه و مجلسیه رضان الله تعالی علیه ما تا این زمان ما به این کتاب شده بسیار کار خوبی بود اونی که برای اولین بار هم معروف وقتی اقوال آمد که مال صدور مال صدور پدر مالکی ما، تا معروف عسره حسن صدر کاظم یعنی قدس الله سره، سال تاسیسیشه ایشون برای اولین بار متنبه شد که این کتاب تکلیف شل مقانی باشه. قبل از ایشون کسی نگفت. ما هم اجبارن حرف ایشون قبول میکنیم بعد نیست حرف اگر تکلیف چرمقانی نیست به اسلوب تکلیف هست یا ریشه تکیه ایو آل تکیه گرفته یا اثر تکیه ایو فرای تکیه است در از با تکیه شلمقاری بی رافت نیست از نظر زمانی هم به همون زمان می خوره یعنی به نظر من این کتاب می خوره خیلی غالبا شک میکنیم اولش درمقانی باشه بین انگلیسی 550 تا 350 تا 630 637 در ساگورتاجا این کتاب می خوره انصافا اینو با قبول بکنید همین اولش برای اولش این بود یقول عبد علی بن موسی بعدم علی اختلاط بشید از پیشوری موسی رساله این مصیبت کاری چونه بود چه اسم نظام نداره چی هست بیا اولش بسم الله الرحمن تسادفاً برای اول هم در عقاید کلام یقول عبد علی بن موسی یه حدود یک صفحه چاپ قدیمی بعد یک دفعه میره تو استنجا اصلا یک دفعه مثلا به چاپجه یک طبع خورده شده و استنجا من جزای بر طغو خمس یک دفعه معلوم میشه که این ورقه از یعنی خود اون کتاب فقهی هم افتادگی داره ادمارن اولش یه رساله در عقاید مجز بوده بعد اون کتاب فقهی مثلا 10 15 برگه در اینجا افتاده اما افتامون اولش افتادگی داره چون اصلا مرحوم ریزه به یک کلامی گره تو سنجا و تهور اصلا هیچ مناسبه را چی باید نداره خمسا از برز سنجا برد تهور خمسا اون فلبدر فل فل اصلا این برد قلاصم به هر حال حالا من وارد این برسته میخوام بشم به هر حال اون که ما الان خود بنده مثل مرحوم سابه هده که استظاهر کرده این کتاب فقه و رضای موجود با رساله مقنع و هدایی شیخ توصدو و با تقریبا تا حد زیادی کتاب ملای حضور الفقی تقارب زیادی داره انصافت این چندتا رساله با همدیگه تقارب دارن و خیلی از فتابا درستی خیلی از فتابا در کلمات سید و مرزا شیخ توصی ادعای اجماع شده روایت هم نداره اما تو که بارزا موجوده و وجودش در تخورزار این است به قططر رو و بودهحتوان نیست با تحمللی که من در رضا کردم مگر یه چند مورد خاص که من شو بذام رو باشه باششه. به استاس یه جای برسش اینجا نیست به استث چند مورد خاص به نظر چهزار تمام ب باید. و اون مطلبی که هگزاره تو بح وارد میشی که ارزش اجماعات سید مرتزار و ش توسی چون اون عادی لد و اون قا بعدم هست. ارزش این اجماعات در مکتر بغداد چیه؟ اینجا دیگه جاموش رو شد ارزشش اینه کاشف از یک نوع تلقی حدود مثلا نیم یک یکتر قبل از اینها این تلقی یکتر قبل از اینها با فقه و میخوره؟ فقه و هم کاشف قطعیز که روایت بوده به ما نرسیده از قول امام نه چرا از من سوال میکنم آخر نظرش شو راجع به اجماع شد؟ بحث کبری و سقرلی رو با زم رفت بودیم؟ آیا این اجماعی که در طایفه که ریشای اصلیش مرکت به بغداد میرسه کاش از قول امام هست یا نه؟ خلاصه جمع بین هم سقران رو تا مکنم سقران رو دا داریم مخاطب اون جمعش که نشد فردانش تو به جمعش میکنی به ازدالله تعالی خلاصه این شد اینه که اجماع رو یعنی اون اجماع تلقی بود شیخ توصی از اون تلقی کشف قول امام کرد به قاعده لط سید مرتضی از کشف قول امام کرد به قاعده اجماع و تلقی نه بولوت دخولی تضمن به اصطلاح صد کرمی دغولی شده که مناظره تضمن قول امام متضمن قول امام بعد ها آمدن به قاعده حد ما تحلیل اون اینه که نه اون اجماعات کاشف از یک نوع تلقی در بغداد بوده این قبول این تلقیه در بغداد تا اونجایی که ما الان در هستیم در زمان حسین روح بیخته شده. و headers میشد که در جامعه یک وحدت و آرامش ایجاد بکنه با فراغ امام زمان ها و کار درستی هم انجام داده این کتاب رسول رضا کاشف از قول امام نیست. قطعاً کاشف از وجوده. پیش من قطعاً این شبهه درش برای. نه یک قبول داریم بیشیم در تشاهات میگه اشتای نهلیت نه عمل وسیح ما تو تشاهات ما همه رو باید نداریم قطعا فکر هم نمی کنم خیالات خودش روشه قطعا ربایته یه مضمونی داره که در ایات معبدو در اهلناس صحات المستنی امام رو در نظر میگه حرفه اصوفیه که میگن وقت اهلنا مثلا پیر راه نما برزامانم چه لفظ اهلنا واش بلند پیش پیر راهنما چطور میاد مرشد در نظر بید. این تو فخرزاد هیچ جهیدی ما نایمونه یه چیزی عجیبه قریبی هم داره این فکر ای غیر که در وقت خاصی گفت بعد صلی احد الائمه یا امام که نسل اینه بی در نظر بیه وقتی یه اعتراض خاطر مستیبر از امام زمان بخوام این هی جدیه نعمده. در هیچ جهیدی ما نایمونه اشعار نهلیه نعمل وسی در تشهد هیچ مثسری ما نلوزه منحصر در فخرزاد در از قیل از که حالا اجماع شده یه سلخ مطالب و عجیب و غریبم داره این طور نیست که حالا همه باشه حالا من باید اون بحث نمیخوام بشم در از که من خود من قطع دارم که اینها ها روایت بوده الاسه به ما نرسیده یعنی انصافا این تلقیه به قبول که اسمش شد در بغداد اجماع ارزش عرضش علمیش پیشونده به مقدار این است که ک